حکایت پارسازاده ایران را نعمت بیکران از ترکه اممان به دست افتاد. فسخ و فجور آغاز کرد و مبذری پیش گرفت. پر جمعه نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم ای فرزند دخل آب روان است و ایش آسیای گردان، یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد. چو دخلت نیست، خرج هست تر کن که میگویند گوگند سرودی اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجل گردد خوش رودی اقل و عدب پیشگیر و لحب و لعب بگذار، که چون نعمت سپری شود، سختی بری و پشیمانی خوری. پسر از لذت نایونوش این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت، راحت عاجل به تشویش مهنت آجل منقص کردن خلاف رأی خردمند است. خداوندان کام و نیک بختی، چرا سختی خورند از بیم سختی، برو شادی کنه یار درفروز، غم فردا نشاید خورد امروز، فکیفه مرا که در صدر مروت نشسته باشم و عقد فتوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام افتاده هر که علم شد به سخاو و کرم، بند نشاید که نهد بر درم، نام نکویی که برون شد به کوی، در نتوانی که به بندی به روی، دیدم که نصیحت نمیپذیرد و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمی کند. ترک مناصحت گرفتم و روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار بستم که گفتند بلد ما علیک فا اندم یقبلو فما علیک گرچه دانی که نشنوند بگوی هرچه دانی زنیک خواهی و پند زود باشد که خیر سر بینی به دو پای افتادن در بند دست بر دست میزند که دریق نشنیدم حدیث دانشمند. تا پس از مدتی آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش به صورت بدیدم که پاره پاره به هم برمیدوخت و لقمه لقمه همی اندوخت. دلم از ضعف حالش به هم برآمد و مروت ندیدم، در چنون حالی ریش درویش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن، پس با دل خود گفتم، حریف سفل در پایان مستی، نگندیشد شد روز تنگ دستی، درختن در بهاران برف شاند زمستان لاجرم بیبرد ماند.